جناب عطیق جدیدن رمان خاک و خاکستر شما توسط کریستینا اکلوند به زبان سیودنی ترجمه شده اول میخواستم از شما بپرسم که شما چی احساس داره این که کتابتان به یک زبانی جدید ترجمه میشه ببینین دیگه مماند همه اینی سندگاه دیگر یک جای خوشی و بالندگی است خاطر ببینم که داستانی که تقریبا 14 سال پیش ناشته بودم و در گوشی ک خود در تنهایی خود و حساسه میبینیم که راه باز کرده به دنیا و همه او رو میخونن در همه جا ترجمه میشه دیگه چی میتونم بکنیم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> میخواستم یک پرسش دیگر داشته باشم که رومان سنگ سبور شما زودتر از خا خاکستر ترجمه شد به زبانهای مختلف از جمله زبان سیودنی چطور او رمان زودتر و کندتر و موفق ما؟ چند چیز از اولیه که خاک خاکستر تقریبا چند سال بود قرار بود که باید ترجمه شد در سویدنی دوباره آمدام با ناشرای اونجا هم صحابت کردیم ولی خب چون که سنگ صبور جایزه گانکور گرفت طبعا جایزه گانکور یک جایزه ایسه که خب در همه جا میشناسند و تو او زمان من اونقدر در سویدن و در چی, چی کشوره کارای مر نمیشناختند و رمانم نخونده بودند ولی uh joysig on court a boyshoot داستان های دیگر معهم بخوانند و توجه کنند و چاپ بکنند یکی از نکات که مترع می ترجم مطرح میکرد یعنی نکات جذاب رمان، نوی زاوی دید شخص دوم بود که میگفت بسیار موفق نوشته شده و در ضمن اینکه داستان بسیار گیراه است و در واقع نوی تاریخ معاصر افغانستان هم هست و بر اینها چی چیزهایی هست که خاک و خاکستر را در واقع جهانی میسازد؟ فکرم می کنم که مسئله این که من به مسائل بسیار سیاسی نمی پردازم. تحلیل سیاسی ندارم در کارهای خود من فقط سر انسان میاندیشم ای بابا دستگیر که در خاکستر خاکستی می تانه پیرمرد باشه در سراییوو پیرمرد باشد در رواندا، پیرمرد باشد در جنگ جهانی دوم. من فکر میکنم کار ادبیات همین که یک زندگی یک انسان یک فرد میگیره و در اون قشم دره و فقط اینه که با اون رو جهانی بسازه ولی همین که شما در مورد انسان فکر میکنین. انسان عرضش های جهانی داره در روی در خود. خلاص <تصفيق> ما کدوم ادعایی ندارم که میگویم که ولی این داستان که میشم مد همیشه داستان جهانی نیست نه فقط ما انسان‌های بسیار ساده را میگیرم و از مسائل بسیار ساده زندگی و از افسردگی ایشان از نوویدیشان در یک جنگ صحبت می کنم شاید چونی چیز سبب شده باشد که داستان جهانی بسازد شما بزودی برنامه دارین در اینجا میشه توضیح بدین که چگه بست؟ مرکز فرهنگی استوکالم هر سال یک نویسنده رو دوت میکنند و ها می داشته باشند در مورد کارهایش دیگه امسان من رو دعوت کردند و که در مورد کتاب تازه اون رو به چاپ کردن داره کتاب اول اول امروز خاکستر خاک و با با خانواده‌ی سویدنی خود صحبت کنم